سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی. با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید. اسم داستانمون هست گربه سفید. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری پادشاهی سه تا پسر داشت که هر سه تاشون اونقدر باهوش و شجاع بودن که پادشاه میترسید قبل از مردنش قلم قلمرو پادشاهی رو از دستش بگیرن و با اینکه خیلی پیر شده بود دلش نمیخواست تا موقعی که خودش میتونه کشور رو اداره کنه اونو به پسراش بسپره اون سرزمینش رو تو صلح و آرامش نگه داشته بود و به پسراشم میگفت که باید همینطوری باشن یه روز دنبال پسراش فرستاد و با اونها با مهربونی صحبت کرد و بهشون گفت همونطوری که میدونید من خیلی پیر شدم و دیگه قدرت فکر کردن و بدنی اونقدر نیست که مثل گذشته باشم و بتونم کارهای کشور رو اداره کنم میترسم این ناتوانی من سبب بشه که آرامش کشور به هم بخوره و حالا میخوام که یکی از شما تاج رو به سرتون بگذاریم ولی در عوض باید برای من یک کاری انجام بدید از اون جایی که من میخوام خودم از سلطنت کناره گیری کنم فکر میکنم که اگه یه سگ زیبا دوست داشتنی و با وفا داشته باشم همدم خوبی برام میشه حالا هر کدوم از شما که بتونه یه اینجوری سگ برای من بیاره تاج و تخت رو بهش میس بارم هر ستا از فکر پدرشون متعجب شدند. دو تا پسر کوچیک‌تر از اینکه فرصتی برای سلطنت به دست آورده بودند خیلی خوشحال بودن و پسر بزرگ‌تر با اینکه از نظر شخصیت و رفتار با اونها متفاوت بود ولی چیزی با اونها نگفت. هر سه تا پسر هدایای زیبایی از پدرشون دریافت کردند و قرار گذاشتن که سال دیگه تو همونجا و همون وقت دوره همدیگه جمع بشن و سکهای زیباشون رو به پدرشون تحویل بدن. رو به, به قلههاشون هاشون رفتن و بهترین دوستاشون رو خبر کردن تا درباره پیدا کردن یه همچین سگی با اونها مشورت کنن. سه تا برادر به همدیگه قول داده بودن که همیشه با هم دوست باشن و اون چرا که در آینده به دست میارن، با هم دیگه تقسیم کنن و هرگز اجازه ندن که کسی بین اونها رو به هم بزنه. برای همین تصمیم گرفتن که تو موقع مقرر قبل از اینکه به حضور شاه برسن سکهاشون رو به هم دیگه نشون بدن. خلاصه اینکه که برادرها از هم خدافزی کردن و هر کدوم به راهی رفتن. هر ستا در راغ با خطرای زیادی روبرو شدند از بین اونها پسر کوچیکتر جوونی زیبا چهره و شاداب بود و تمام چیزهایی رو که یک شاهزاده باید بدون رو میدونست شجاعتشم مثال زدنی بود هنوز یه روز نگذشته بود که اون سگهای بزرگ و کوچک با گوشهای آویخته و پشمالو و لبای آویخته سگ تازی و خلاصه چند تا سگ خریده بود اون هر کدوم از سگ رو که میدید فکر میکرد که از بقیه زیباتره به خاطر همین اونها رو میخرید و چون تنها بود و به تنهایی نمیتونست از پس سیچل تا سگ بر بیاد مجبور بود که مدام چند تا از اونها رو که زیاد نمیپسندید ول کنه تا برن اون چند روزی رو به همین ترتیب گذرون تا اینکه به جنگل بزرگ و انبوهی رسید ولی نمیدونست که از کدوم طرف بره رد و برق و بارون هم به مشکلاتش اضافه کرده بودن شاهزاده اولین راهی رو که پیدا کرد ادامه داد بعد از اینکه یه مقداری راه رفت نور ضعیفی رو بین درختها دید با دیدن این نور خیلی امیدوار شد که حتما کلبهای تو جنگل پیدا کرده و میتونه شب را اونجا استراحت کنه وقتی به اون نور نزدیک شد متوجه شد که در مقابله یک قصر باشکوه ایستاده قصر از طلا ساخته شده بود و با یاهود پوشش داده شده بود و همین درخشش یاهود ها بود که از دور راه رو به جوون نشون داده بود. دیوارهای اون قصر از جنس چینی به رنگهای مختلف و تصویر تمام داستانهایی بود که شاهزاده شنیده بود. روی اونها نقاشی هم کشیده شده بود. شاهزاده که به خاطر بارون شدیدی که هنوز داشت میبارید کاملا خیس شده بود نتونست زیاد به تماشای نقاشی ها بیسته و دوباره به طرف در بزرگ برگشت. در کنار در پای یک یوزه به وسیله زنجیری از الماس آویزون شده بود. شاهزاده تو این فکر بود که چه کسی تو این قصر باشکوه زندگی میکنه. با خودش فکر میکرد که حتما اونا خیلی خوب اینجا رو در برابر دزدها محافظت میکنند چون در غیر این صورت هر کسی میتونه این زنجیر رو ببره. و با اون کاملا ثروتمند میشه جوون در زد و فورا زنگی نقره به صدا در اومد و در باز شد ولی هیچ کسی پشت در نبود. فقط یه تعداد زیادی دست تو هوا معلق بودن که مشلهایی تو دستشون بود. اون از تعجب اونقدر جوی در ایستاد تا اینکه بالاخره همون دستا اونو به داخل کشوندن شاف زاده با اینکه حس خوبی نداشت ولی بعدش نمیومد که داخل رو ببینه ببینه چه خبره اون خودش رو برای هر اتفاقی آماده کرده بود بالاخره وارد یه تالار خیلی بزرگ شد که با سنگ لاجه ورد سنگ فرش شده بود در اون تالار صدای دلنشینی آواز میخوند دستانی که در فراز تو هستند از تو اطاعت و حمایت می‌کنند و اگر نمیترسی که آشق شوی می‌توانی بدون ترس اینجا بمانی شاهزاده خیلی خوشحال شد که در اونجا خطری تهدیدش نمیکنه اون به کمک همون دستا به طرف دری راهنمایی شد که از جنس مرجان بود اون در به تالار بزرگی پر از مروارید باز میشد که اون تالارم به اتاقهای زیاد دیگهای ختم میشد در اونها چراغهای زیادی روشن بود و اشیا و تصویرهای زیبایی هم اونجا وجود داشت بعد از اینکه شاهزاده از حدود شستا اتاق گذشت در یک اتاق به وسیله دستها متوقف شد در اونجا یه صندلی راحتی در کنار بخاری قرار داشت و آتیش هم در اون ور بود همون موقع یه جفت دست زیبا نرم و گرم لباسهای خیس شاهزاده رو گرفت و لباسهای زیبایی رو که با طلا یاغود تزئین شده بود بهش داد شاهزاده واقعا همه چیز رو تحسین میکرد دستا واقعا اونو خوب راهنمایی میکردن. اگرچه یه وقتایی هم از حضور نایهانی یه دست تعجب میکرد و جا میخورد. وقتی اون لباس های زیبا رو پوشید، از زمین تا آسمون با اون زمونی که پشت در ایستاده بود با لباس خیس فرق کرد. دستا اونو به اتاق باشکوهی بردن که رو دیوارهای های اون تصویر قصه گربه چکمه پوشت و چند تا قصه معروف دیگه در مورد گربه ها نقاشی شده بود. یه میز خیلی مجللی برای شام آماده شده بود که برشخواب ها و قاشق و چنگال های رون همه از طلا بودن. بقیه ای هم از کریستال و سنگ قیمتی درست شده بودن. شانس به این فکر کرد که صندلی دوم مال چه کسیه؟ تو همون موقع چند تا گربه که اسباب و آلای موسیقی در دست داشتن وارد شدند و گوشه تالار رفتن و به ترتیب بایستادن. یکی از گربه ها که کاغذی تو دستش داشت بقیه رو راهنمایی میکرد. گربه ها سازهاشون رو در دست گرفتند و شروع کردند و یه آهنگی رو نواختند که شاهزاده تا اون موقع نشنیده بود. بعد از مدتی موسیقی قطع شد ولی گروه موسیقی هنوز همونجا ایستاده بودند شاهزاده با خودش فکر میکرد که صحنه عجیب بعدی چیه که باید ببینم تو همین موقع یه در باز شد و سه نفر که شنل سیاه رنگی رو سر تا پا و حتی صورتشون رو هم پوشونده بودن وارد شدند اونا قرپس پر از موش به همراه داشتن. شاهزاده اونقدر تعجب کرده بود که فکر میکرد داره خواب میبینه. یکی از افراد جلو اومد و پوشش صورتش رو کنار زد. اون ای بسیار زیبا بود که شاهزاده تو تمام عمرش گربهی به اون زیبایی ندیده بود. اون گربه بسیار جوان و ناراحت به نظر می رسید و با صدایی دلنشین گفت پسر پادشاه خوش اومدی. ملکه گربه ها از زیدن تو خوشحاله. شاهزاده جواب داد گربه عزیز از استقبال گرم شما متشکرم، اما حتما شما یک گربه معمولی نیستید. در واقع طرز صحبت کردن شما و زیبایی قصرتون این موضوع رو هم ثابت می به سفید گفت، پسر پادشاه خواهش میکنم، پیش از این از من تعریف نکن. من عادت به تعریف بیش از حد رو ندارم. اما حالا بفرمایید شام میل کنید. دست های مرموز شروع به آوردن شام کردن. اونو اول دو تا دیست روی میز گذاشتن. یکی پر از کبوترهای سرخ شده و دیگری پر از موش بود. با او دیدن اون دیس دوفم شاهزاده فکر کرد که حتما از اون شام ها خوشش نمیادش. اما تو همون موقع گربه سفید بهش اطمینان داد که غذاهای های برای اون تو آشپزخونه جدا آماده شده و اون رو مطمئن کرد که غذاش موش نیستش. اون طوری حرف میزد که شاهزاده به حرفاش شک نمیکرد. جوان متوجه شد که گربه سفید چیزی شبیه یه دستبند به پنجهش بسته روی اون دستبند تصویری بود که از گربه سفید اجازه گرفت اون رو ببینه شخص با تحجب خیلی زیاد متوجه شد که روی اون دستبند تصویر یه مرد زیبا خیلی شبیه به خودش حک شده انگاری عکس خودش بود گربه سفید که دید توجه شاهزاده به اون جلب شده یکم ناراحت شد و شاهزاده جرات نکرد که بپرسه که قضیه اون تصویر چیه در عوض شروع به حرف زدن درباره چیزهای دیگه کرد گربه سفید علاقه زیادی به صحبت کردن با اون نشون میداد بعد از شام اونا به اتاق دیگه ای رفتن که شبیه تالار تئاتر بود چندتا تا گربه بر روی سن رفتن و جست و خیز کردند. بعد گربه سفید به شاهزاده شب خیر گفت و رفت. دست‌ها شاهزاده را به اتاقی راهنمایی کردند که پر از پروانه های خوش شده بود. شاهزاده تو تمام عمرش چنین منظره‌ای ندیده بود. پروانههایی با بول های رنگ و رنگارنگ در اون اتاق چندتا تا آینه از سقف تا زمین آویزون بودند. و در گوشه از اتاق تختی سفید با پوشش توری و تزین شده با روبان دیده می شد در سکوت روی تخت دراز کشید و نمی دونست که چطور باید با اون دستا صحبت کنه صحب زود شخصاده با صدایی که از بیرون پنجره میومد بیدار شد دستا ظاهر شدند و لباس های مجللی به تن اون کردن شاهزاده بیرون رفت و دید که تعداد زیادی از گربه ها در باغ قصد جمع شدن تعدادی از های تازی تو دستشون بود و برخیاشون بوغ و کرنا داشتند. انگاری گربه سفید داشت به شکار می رفت دست چوبی به شاهزاده دادند و به اون فهموندن که سوار اون بشه شاهزاده خوب از سواری بلد نبود اما به روی خودش نیاورد و به سرعت روی از پرید. گربه سفید خودش روی یه میمون سوار شده بود. اون میمون یه حیمون خیلی فوقلادهی بود که وقتی گربه سفید دلش میخواست اقاب جوونی رو تو هوا شکار کنه میتونست اونقدر بالا بره تا اقاب رو بگیره. شاهزاده تو همه عمرش اینش شکار خوب و نرفته بود وقتی اونها به قصر برگشتن اون با گربه سفید شام خورد بعد از شام گربه سفید یه جام کریستال بهش داد که در اون مایه جادویی بود چون به محض اینکه شاهزاده اونو خورد همه چیزو فراموش کرد حتی این موضوع رو هم که برای خرید سگ به اون حوالی اومده بود اون رو هم حتی از یادش برد و فقط به این فکر میکرد که اگه پیش اون گربه سفید بمونه چقدر بهش خوش میگذره. به این ترتیب روزها و ماه ها گذشت و اونا حسابی سرگرم بودن. تا اینکه مهلت مقرر یک ساله نزدیک بود به پایان برسه. شاهزاده همه چیز رو درباره قراری که با برادرش گذاشته بود از یاد برده بود. اون حتی نمیدونست که اهل چه کشوریه اما گربه سفید که میدونست اون چه موقع باید بره بهش گفت که میدونی که فقط سه روز وقت داری تا یک سگ قشنگ برای پدرت پیدا کنی برادرات سگای قشنگی پیدا کردند یهو جوون حافظش رو پیدا کرد و فریاد زد ای وای چی شد که من مسئله به این مهمی رو فراموش کردم. آینده من به این موضوع استگی داره. من چطوری میتونم تو سه روز سگی پیدا کنم که به اندازه یک پادشاه بیارزه؟ اون خیلی عصبانی و ناراحت شده بود ولی گربه استفید بهش گفت که پسر پادشاه اونقدر خودتو اذیت نکن. من دوست تو هستم و همه چیز رو برات درست میکنم. بازم میتونی اینجا بمونی چون اسب چوبی قادره که تو رو مدت کوتاهی به کشورت برسونه. شخص گفت گربه زیبا از شما مشکرم ولی وقتی که من سگی برای پدرم پیدا نکردم برگشتن من چه فایدهی داره. گربه استفید که یه بلوط تو دستش گرفته بود گفت اینجا نگاه کن. تو این بلوط سگیه که قشنگترین سگ داخلشه. اصلا اون ستاره سک هاست. شاهزاده گفت آه گربه عزیز شما چجوری میتونید تو چنین شرحیتی همچین شوخی بکنین. اون بلوت رو نزدیک گوش شاهزاده گرفت و گفت گوش کن از داخل بلوت صدای آرومی به گوش میرسه که میگفت او او او شاهزاده که خیلی زده شده بود با خودش گفت سگی که داخل این بلوت جا شده حتما خیلی کوچیکه. او میخواست که سگ رو در بیاره و اون رو تماشا کنه ولی گربه سفید گفت بهتر بلوت رو تا وقتی که پیش پادشاه برسه باز نکنه چون در غیر این صورت ممکنه این سگ کوچیک در راه سرما بخوره شاهزاده بارها از گربه سفید تشکر کرد و ازش خدافزی کرد و رفت اما نه اینکه دلش بخواد که اونجا رو ترک کنه خیلی ناراحت بود اون به گربه سفید گفت با شما روزها به سرعت گذشت من آرزو دارم که ای کاش میتونستم شما رو هم با خودم ببرم گربه سفید فقط سرش تکون داد و به فکر فرو رفت شهزاده اولین کسی بود که به محل قرارشون رسید برادرهاش کمی بعد از اون رسیدن و از اینکه اونو سوار و یه اسب چوبی میدیدن تعجب کردند شاهزاده با اشتیاق اونا رو در آغوش گرفت و بعد هر شروع کردن به تعریف کردن ماجراهایی هایی که براشون پیش اومده شاهزاده تصمیم گرفت قضیه رو از اونا پنهون کنه و یک سگ معمولی رو که در اونجا میگشت نشونه برادراش داد و گفت که اون سگ رو برای پدرش آورده دو تا برادر بزرگتر که برادر کوچیکترشون رو خیلی دوست داشتن از اینکه برادر کوچیکشون نتونست سگ خوبی پیدا کنه برا شما شدند. شدن. فردا صبح اونها پیش پدرشون رفتن. دو تا برادر بزرگتر سک زیبا و کوچیکشون رو در سبد گذاشته و خیلی از اونها مواظبت میکردن. اما اون سگ معمولی که برادر کوچیکتر انتخاب کرده بود دنبال اونها میدوید. وقتی به قصر رسیدن همه به استقبال اونا اومدن و اونها رو به تالاری که پدر در اونجا بود بردن. وقتی دو تا برادر بزرگتر سگ‌هاشون رو نشون دادم واقعا هیچکس نمیتونست بگه که کدوم یکی زیباتره. یه سری میگفتن که خوب پادشاهی رو بین این دو تا برادر تقسیم کنن. تا اینکه برادر کوچیکتر رفت جلو دست کرد تو چیه و بلوتو رو در آورد. اون بلوط رو باز کرد و از داخل بلوط سگ زیبایی بیرون اومد که به زحمت به اندازه یه انگشت میشد. شاه ساده سگ رو روی میز گذاشت. سگ فورا شروع به رقصیدن کرد. پادشاه نمیدونست چی بگه. اون تو تمام عمرش چنین موجود زیبایی ندیده بود. اما به خاطر اینکه شاه برای تقسیم تاج و تختش چنان عجله‌ای نداشت به اونها گفت که شما همگی تو اولین امتحانتون موفق شدین. حالا برید و تو دریا و خشکی یه نو پارچه مرغوب و نازک پیدا کنید که از سوراخ سوزن بگذره برادران مخصوصا دوتا برادر بزرگتر با اینکه دیگه دلشون نمیخواست به جستجو برن ولی از اینکه شانس دوباره پیدا کرده بودن خوشحال شدن و دوباره جستجوی خودشون رو شروع کردن. برادر کوچیکترم سوار اسب چوبیش با آخرین سرعتی که میتونست خودش رو به طرف گربه سفید عزیزش رسوند. تمام درهای قصر باز بودن و از همه پنجره ها نور زیبایی به بیرون میتابید. خلاصه حوضا عادی نبود. دستا به استقبال شاهزاده آمدند و اسب چوبی رو به استبل بردن شاهزاده عجله داشت که زودتر گربه سفید رو ببینه اون در یک سبد کوچک خوابیده بود ولی با شنیدن صدای شاهزاده بیدار شد و به استقبالش رفت گربه سفید گفت فکر کردم دوباره به این قلعه برگردید. بعد شاساده همه داستان رو براش تعریف کرد و بهش گفت که میخواد بازم کمکش کنه چون فکر میکرد پیدا کردن چیزی که پادشاه ازشون خواسته غیر ممکنه گربه سفید با چهره جدی گفت که باید فکر کنه تا ببینه چه کاری از دستش برمیاد اون گفت که البته در قصر گربه هایی هستن که خیلی خوب پارچه بافی میکنن و اگه پارچه مورد نظر پیدا نشه اون میتونه از اونا بخواد که چنین پارچه ای درست کنن. بعد دستها شاهزاده و گربه رو به تالاری هدایت کردند که پنجره های اون تالار به کنار رودخونه باز میشد. و در اونجا اونها شاهد آتشبازی های زیبایی بودن. شاهزاده گفت که بهتره شام بخورن چون بعد از تکردن راه خیلی طولانی خیلی گرسنه نشده یه مدت گذشت. گربه سفید مهارت خاصی تو سرگرم کردن دیگران داشت و کسی گذر زمان رو در کنارش احساس نمیکرد. اون از تمام گربه های دنیا تر بود. یه بار وقتی شاهزاده ازش پرسید که چجوری اینقدر باهوشه، اون گفت که پسر پادشاه از من نپرس هر طوری میخوای فکر کن. من نمیتونم چیزی بهت بگم. شاهزاده خیلی خوشحال بود که دوره ای از عمرش رو با شادمونی پیش گربه سفید میگذرونه. تا اینکه یه روز گربه بهش گفت که مهلتش به پایان رسیده. ولی لازم نیست که نگران باشه چون پارچه مناسبی براش آماده شده. گربه به شاهزاده گفت که این بار من چند تا محافظ رو همراهت میفرستم. شاهزاده به حیات نگاه کرد و دید که یک کالسکی خیلی زیبا و مجلل اونجا منتظرشه. این کالسکه به وسیله دوازده تا اسب کشیده میشد. پوشش کالسکه از پارچه مخملی مزین به الماس بود. حدود 100 کالسکم پشت سر این کالسکه‌ی میومدند که هر کدومشون توسط تا از کشیده می شدن. که همه به یه شرف تزین شده بودن گربه سفید گفت برو و وقتی پیش پادشاه رسیدی اون با دیدن این صحنه حتما رو تختش رو به تو میده. چون فکر میکنه که تو شایستگی اونو داری این گردو رو هم بگیر وقتی پیش پادشاه رسیدی بازش کن توی این گردو همون پارچه ای هست که خواسته بودی جوون گفت گربه عزیز من چجوری میتونم ازت سپاسگزاری کنم اگه تو بخوای حاضرم از پادشاهی دست بکشم و بیام اینجا همیشه کنارت بمونم گربه جواب داد پسر پادشاه تو خیلی خوش قلبی که از یه گربه کوچیک اینجور قدردانی میکنی یه گربه به هیچ دردی نمیخوره مگر گرفتن موش حالا زودتر برو تا به موقع برسی خلاصه شاهزاده از گربه خدا بزی کرد و به راه افتاد. اون خیلی زود به قصر رسید. کالسکه اون دو برابر سرعت اسب چوبی حرکت می‌کرد. با این حال این بار شاهزاده چون دیر راه افتاده بود دیرتر رسید و نتونست سر قرارش با برادرش حاضر بشه. به خاطر همین باید مستقیم به قصر میرفت. اون از این اتفاق که افتاده بود ناراحت نبود. چون میتونست به تنهایی پارچه زیباش رو جلوی پادشاه به نمایش بذاره اون مطمئن بود که در به دست آوردن تاج و تخت موفق میشه پارچه های برادر بزرگتر خیلی مرغوب بودن و براحتی از سوراخ هر سوزنی میگذشتن اما شاه که انگار تصمیم گرفته بود را عذیت کنه سفارش داد سوزن مخصوصی آوردند و سوراخ اون سوزن اونقدر تنگ بود که هر کسی که با یه نگاه, نگاه میکرد میفهمید که پارچهها از سوراخ اون عبور نمیکنه برادرا عصبانی شدن و شروع کردم به اعتراض که این یه حق قصد و ما قبول نداریم تو همون لحظه شیپورا ورود برادر کوچیکتر رو اعلام کردم. پدر و برادرهای بزرگ از دیدن اون شکوه و جلال خیلی تعجب کردن شخص گردور گردو را عجیبش در آورد و گفت که اون رو باز میکنه و پارچه بسیار ظریفی از اون بیرون میاره همه تعجب کرده بودن که همچین پارچهی چجوری از داخل گردو بیرون میاد شخص گردو رو شکست وقتی همه دیدن که از داخل گردو فقط مغز در اومده خندیدن اون مغزه گردو رو هم شکست و از داخلش یه گندم در آورد دونه گندم رو هم باز کرد که داخل اون یه دونه ارزن بود شاهزاده که دیگه داشت تعجب کرد به آرومی پیش خودش گفت که گربه سفید حتما منو دست انداخته در یه لحظه اون احساس کرد که پنجه یه گربه دستش رو گرفته و تو همون وقت انگار حسی بهش گفت که دونه ارزن رو هم باز کن از داخل ارزن تک پارچه‌ای بیرون اومد که دارای بی‌نظیرترین طرح تر و رنگ در دنیا بود وقتی سوزن رو آوردن همه تو تعجب نگاه کردند که پارچه از سوراخ سوزن عبور کرد رنگ از چهره پادشاه پرید و دو پسر دیگر ساکت و ناراحت ایستادند و هیچ کسی نمیتونست انکار کنه که اون پارچه بی و ظریف ترین پارچه دنیاست. پادشاه رو به پسرهاش کرد و با لحن خاصی گفت هیچ چیزی بیشتر از این منو راضی نمی کنه که ببینم شما واقعا تاج و تخت را می خواید و برای به دست آوردنش تلاش می کنید. ولی باید در این مورد مطمئن بشم. به خاطره همون یه بار دیگه برید و کسی که بتونه تو پایان یه سال با زیبا ترین دختر دنیا برگرده و باهاش ازدواج کنه همون لحظه پادشاهی رو بهش میسپارم و به هر حال جانشین من حتما باید ازدواج کرده باشه شخصاده مطمئن بود که بازم اونه که تاج و تخت رو به دست میاره برای همین به سرعت برگشت سوار کالسکه زیباش شد و همراه محافظاش به سرعت به قلعه برگشت این بار گربه استفید منتظرش بود و براش گلهای زیبایی چیده بود و آتیشهایی تو آتشتون شوله کرده بود رای هی دلپذیرم تو فضا پیچیده بود گربه سفید که در تالاری کنار باغ منتظر شاست داده بود با رسیدن اون گفت بسیار خوب پسر پادشا میبینم که برای بار دوم بدون تاج و تخت برگشتی؟ به هر حال خوش اومدی. شاهزاده گفت من از سخاوت شما تشکر کنم. درسته که برای بار دومم دست خالی برگشتم اما با اون همه های پدرم دیگه علاقه چندونیم برای به دست آوردن تاج و تخت ندارم. گرب جواب داد مهم اینه که تو تلاش تو کنی تا شایستگی خودت رو ثابت کنی. چون تو دفعه بعد باید با شاهزاده خانم زیبا برگردیم ما باید برای تو دنبال یه نفر بگردیم حالا بزار فعلا این لحظه ها رو از دست ندیم امشب میخوام با قایق تو رو به رودخونه ببرم فکر میکنم که خیلی خوش بگذره اون سال از سالهای قبلم بیشتر به شاهزاده خوش گذشت گاهی شاهزاده از گربه سفید میپرسید که چطوری می حرف بزنه و می گفت شاید شما یه جادوگرید یا شاید کسی شما را تلسم کرده که گربه شدید. اما گربه هر بار از جواب دادن شونه خالی می کرد و شاهزاده میفهمید که اسم اون بلانشه. روزها به سرعت گذشت. یه روز اتفاقی افتاد که شاهزاده تو عمرش اون رو فراموش نمیکرد. یه روز از گربه به شاهزاده گفت که اگه میخواد یه شاهزاده خانم زیبا رو همراه خودش ببره باید فردا کارهایی رو که اون میگه انجام بده. گربه گفت این شمشی رو بگیر و سر منو ببر. شاهزاده فریاد زد من من سر شما رو ببرم. بلاشه عزیز من چطوری میتونم این کار انجام بدم؟ اون جواب داد پسر پادشاه من بهت گفتم کارهایی رو که میگم باید انجام بدی عشق تو چشای شاهزاده جمع شده بود و ازش خواهش میکرد که یه چیز دیگه ازش بخواد اما اصرارهای اون اون رو از تصمیمش منصرف نکرد تا اینکه بالاخره شاهزاده با دستایی لرزون شمشیر رو بالا برد و سر کوچیک گربه سفید رو برید، تو همون لحظه یه شاهزاده خانم خیلی زیبا جلوی اون ظاهر شد در حالی که هنوز شاهزاده از شدت تعجب نمیتونست حرف بزنه در باز شد و یه تعداد خدمتکار و ندیمه وارد شدن که هر کدومشون یه پوست گربه تو دستشون بود. اونا همگی به شاهزاده خانم تبریک گفتن و دست اون رو بوسیدن و خوشحال بودن که اون یه بار دیگه به شکل اصلی خودش برگشته. اون با شادمونی با اونها صحبت کرد. بعد از چند دقیقه از اونا خواست که برن و اونو با شاهزاده تنها بذارن. اون به جوون گفت که شاهزاده می میبینی تو درست حد زده بودی که من یه گربه یه معمولی نیستم. پدر من دوی شیشت پادشاهی این پادشایی میکرد و مادرم ملکه که پدرم واقعا عاشق بود مدام دوست داشت که سفر کنه. وقتی که فقط چند هفته از به دنیا آمدن من گذشته بود مادرم تونست به دیدن کوهی بره که داستانهای اسرارآمیزی در شنیده. اون با تعدادی از همراهاش به دیدن کوه رفته بودن. هیچکس تا اون موقع به اونجا نرفته بود. ولی مادرم شنیده بود که پریای زیادی اونجا هستم و میوههایی پیدا میشه اونجا که هیچکی تا حالا نده و نخورده. خلاصه مادرم به سوی اون باغ میره و وقتی در اونجا میرسه تمام باغ با طلا و جواهر تزیین شده. مادرم به خدمتکاراش دستور میده که در بزنن. ولی کسی جواب نمیده. انگاری که همه ساکنان اونجا مرده یا به خواب رفته بودن. در این صورت برداشتن از میوه‌های های اون باغ سخت میشد. کاری که ملکه واقعا داشت انجام بده. برای همین ملکه دستور میده که یه بون بیارن. و از دیوار اون باغ بالا میره اما چون دیوار باغ خیلی بلند بوده و نردبون به اندازه کافی بلند نبوده اونا نمیتونن بالای دیوار برن ملک ناامید میشه و دستون میده که امشب هم رو همونجا بمونن تا ببینن چه اتفاقی میفته و با ناراحتی به خواب میره نیمه شب با حالت بدی از خواب میپره و با تعجب میبینه که یه پیرزن زشت و ریزندامی کنارش نشسته. پیرزن بهش میگه که ما فکر میکنیم که اصرار شما برای چیدن میوه این باغ ممکنه که باعث درد سرتون بشه. به خاطر همین من و خواهرهام تصمیم گرفتیم یه مقدار میوه از باغ رو به یک شرط به شما بدیم و اون شرط اینه که شما دختر کوچیکتون رو به ما بدید تا فرزند ما بشه. ملکه فریاد میزنه دخترم نه چیز دیگه ای پیدا نکردید که به جای میوه ها بگیرید من حاضرم همه ثروتم رو به شما بدم جادوگر پیر جواب میده نه ما فقط دختر کوچیک شما رو میخوایم مطمئن باش که اون در اینجا زندگی خوبی داره ما در این سرزمین جادوگرها همه چیز رو براش فراهم میکنیم فقط باید بدونی که تا قبل از اینکه اون ازدواج کنه تو نمیتونی دیگه اونو ببینی ملکه گفت اگه شرط شما خیلی سخته من میدونم که از میوه های این باغ نخورم میمیرم. به خاطر همین مجبورم که دخترم را از دست بدم. خلاصه جادوگر پیر اونو به داخل قلعه میبره و با اینکه هنوز نیمه شب بوده ملکه میتونه همه چیز رو خوب ببینه و میبینه که جادوگر زیبا از اون چیزی که به نظر میومده زیباتره. در همین لحظه گربه سفید گفت که شاست من باید به شما بگم که اون قلعه همین جاییه که الان ما هستیم. دختر دوباره ادامه میده که اون شب جادوگر پیر به ملکه میگه که میخوای خودت میوه ها رو بچینی یا بگم خودشون بیان. ملکه میگه من خیلی دوست دارم که شما بهشون بگید بیان. آخه خیلی چیز جدیدیه. جادوگر پیر دوباره چشمک میزنه و فریاد میزنه و هولو شلیل گیلاس گوجه گلابی خربزه انگور سیب، پرتقال لیمو توت فرنگی همه بیاین تو همون لحظه همه میوهها یکی بعد از دیگری میان و با اینکه باید کمی خاک گرفته باشند ولی اونقدر تمیز بودن که ملکه تعجب میکنه چون اونا روی درخت جادوگر رشد کرده بودن، جادوگر پیر چند تا سَبَد طلایی به ملکه میده تا میوه ها رو اون بریزه. میوه ها اونقدر زیاد بودن که 400 تا قاطر لازم بود تا اونها رو حمل کنه. بعد جادوگر قراری که با ملکه گذاشته بود به یادش میاره. فردا صبح ملکه به سرزمین خودش برمیگرده. اون در راه از معامله‌ای که انجام داده بود پشیمون میشه و وقتی پیش پادشاه میرسه خیلی ناراحت میشه پادشاه ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاده ملک اول نمیگه که چه مسائلی پیش اومده ولی وقتی وارد قصر میشه میبینه که پنج تا کتوله از طرف جادوگر فرستاده شدن تا بچه رو ببرن اون وقت ملک مجبور میشه که به همه چیز اعتراف کنه و پادشاه با فهمیدن ماجرا خیلی عصبانی میشه و من و مادرم رو در قلعه‌ی پنهون میکنه و کوتوله ها رو از قفس بیرون میکنه اما جادوگر بعد از اون یه قول رو به دنبال من میفرستن که هر کس رو که میدیده می خورده و اگه فوت میکرد همه چیز رو باد میبرد شاه با روبرو شدن این قول برای حفظ دارایی هاش مجبور میشه که قبول کنه منو به جادوگر بدن به این ترتیب جادوگر با کالسکش که از مرواری ساخته شده بود و اسب آبی که اون رو میکشید به دنبال من میاد البته که اون توسط یه زنجیر الماس به کالسکه بسته شده بود گهواره من به این قرار داشته و اونا برای نگهداری من برج مخصوصی درست کرده بودند و منو در محیط زیبا و آروم بزرگ کردند و همه چیزهایی رو که یه شاهزاده باید بدونه به من آموزش دادن. البته من هیچ یار و همراهی نداشتم. مگه یه توتی و یه سگ که هر دو میتونستن حرف بزنن. جادگر پیرم هر روز سوار بر اون قول به دیدن من میومد. یه روز که من داشتم از پنجره جنگل و تماشا میکردم شاهزاده زیبا و خوشهرهی رو دیدم که به نظر میومد برای شکار به جنگل به اطراف قلعه اومده. شاهزاده ایستاده بود و من نگاه میکرد. وقتی که اون شهستاده دید که منم بهش نگاه میکنم با احترام به من سلام کرد و میتونی حدس بزنی که من از پیدا کردن یه هم صحبت چقدر خوشحال شده بودم. با وجود اینکه پنجره اتاقم خیلی بلند بود اما صحبت ما تا نیمه شب طول کشید. اون شب اون شهستاده خدافزی کرد و رفت. و چند بار دیگه به دیدن من اومد. و بالاخره من راضی شدم که باهاش ازدواج کنم. ولی مسئله این بود که من چطوری میتونستم از اون برج فرار کنم. البته که جادوگرها همیشه یه مقداری کتان تو نزدیکی من میذاشتن تا اگه حسلم سر رفت اونها رو بریسم. و من اونقدر نخ کتان درست کرده بودم که بشه از اون یه نردبون درست کرد و پایین رفت. ولی متاسفانه، ولی متاسفانه درست وقتی که اون شاهزاده داشت به من کمک میکرد که تا پایین برم، جادوگر پیر منو دید. شاهزاده قبل از اینکه بتونه کلمه‌ای در دفاع از خودش بگه، توسط قول بلیده شد. منم که از دستور جادوگرا برای ازدواج با شاه کوتوله ها سرپیچی کرده بودم و حالا میخواستم از برج فرار کنم، محکوم شدم به اینکه یه گربه سفید باشم. وقتی اونا منو به این قلعه آوردن همه خدمتکارای قصر پدرم اینجا بودن که البته همشون نامرئی شده بودن و فقط دستاشون پیدا بود. خلاصه وقتی که اونا منو تلسم کرده بودن داستان زندگیم رو برام تعریف کردند. تا اون موقع من فکر می کردم که واقعا بچه اونا هستم. اونا به من گفتن که تنها شانسم برای رهایی از این تلست اینه که علاقه و محبت ای رو که روزی سر راه من قرار میگیره به دست بیارم. شاهزاده حرفش رو قطع کرد و گفت شاهزاده خانم شما حالا این عشق رو به دست آوردین؟ دختر گفت بله فکر میکنم شما همون ای هستین که اگه شما واقعا به من علاقمند باشین؟ همه مشکلات من تموم میشه. شاهزاده گفت من واقعا شما رو دوست دارم. البته اگه شما هم بخواید با من ازدواج کنین. دختر گفت من شما رو از هر کس دیگه در این دنیا بیشتر دوست دارم. ولی حالا وقت اونه که پیش پدرتون برین و نظر ایشون رو بشنویم. به این ترتیب شاهزاده همراه اون سوار کالسکه شدن. این بار کالسکه از دفعه قبلم زیباتر شده بود و اونا همراه های بیشتری داشتن. حتی نل اسبام هم از الماس درست شده بودند چنین کالسکهی هیچ وقت در هیچ جای جهان دیده نشده بود. از اون جایی که دختر بسیار باهوش و مهربون بود، اونا سفر خوب و راحتی رو بذاروندم و وقتی به قصر پادشاه نزدیک شدم، دختر، توی سندلی نشسته بود که چهار طرفش چند تا محافظ استاده بودن این سندلی که از نوع کریستال گرون قیمت ساخته شده بود به وسیله پرده های پوشیده شده بود تا شاهصاد خانم که روی اون نشسته شده بود دیده نشه شاهصاده بردراش رو دید که جله قصر هر کدوم با یه زیبا مشغول قدم زدن هستن اونا با دیدن برادر کوچیکشون به طرفش اومدن تا بپرسن که آیا تونسته همسری برای خودش پیدا کنه یا نه؟ اون به برادرش گفت که یه همسر بی پیدا کرده یه گربه سفید اونا به حرف اون خیلی خندیدن و گفتن حتما از ترس موشای قصر اون گربه رو با خودش آورده هر کدوم از برادرها همسراشون رو در جایگاه غصر نشوندن ولی وقتی نوبت به کوچیک‌ترین شاهزاده رسید اون با اون صندلی کریستال توجه همه رو جلب کرد همه میگفتند که این زیباتری رو مجللترین جایگاهیه که تو عمرشون دیدن شاه با دیدن دو شاهزاده خانوم اونها رو با خوشرویی پذیرفت ولی واقعا نمیتونست از بین اونها کسی رو انتخاب کنه بعد رو به پسر کوچیک‌ترش کرد و گفت تو تونستی همسری پیدا کنی؟ شاهزاده جواب داد آلی جناب در این سندلی گربه سفیدی با پنجه های نرم و چهره دلنشین نشسته که مطمئنم شما جذبه اون میشین. پادشاه به طرف سندلی رفت تا خودش پرده رو کنار بزنه و به محض اینکه دستش به پرده خورد پرده و سندلی ناپدید شدند. و شهزاده خانم با تمام زیبایی شله اون ایستاد موهاش رو رو شونه ها اونقدری که موهاش موج میخورد و عطر گلهای بهاری پراکنده میشد. پیراهن قشنگ و زیبایی سفیدی که به تن کرده بود زیبایی شد چندان کرده بود اون به پادشاه سلام کرد و در بین حوزار هم همه ای را افتاد شاستاد خانم گفت من به اینجا نیمدم که از شما بخوام پادشاهیتون رو به من بدید. من خودم دارای 6 تا سرزمین هستم. از شما هیچ چیز نمیخوام. مگه اینکه رضایت بدید با پسرتون ازدواج کنم. پادشاه و درباریا که نمیتونستن تعجب و شادی خودشون رو پنهون کنند، مراسم عروسی هر سه تا پسر رو با هم به راه انداختن. عروسی و جشت چند ماه برقرار شد و هر کدوم از پسرها که تکه ای از قلم روی پدرشون رو به دستا برده بودن با همسرای خودشون به سرزمین محل حکومتشون رفتن و سالهای سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت برده باشیم تا داستان بعدی منتظرمون باشید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها